سوره زلزله آه. بسم الله الرحمن الرحیم بنامه الله که بخشای اندفاع با رحمت است ازا زلزلت الارمو زلزاله آنگاه که زمین به شدیدترین وجهی به لرزه در آقید و اخرجت الارمو اثنان و بارهای سنگین خود را بیرون بریزد و قال الانسان ما لها درانحال انسان گوگد زمین را چه شده است یوم ایدین تحدث اخبارها درانروز زمین اخبارش را بازگو کند بی ان ربک یرو پروردگارت به او وحی کرده است یوم آن روز مردم در گروه های مختلف از گورها خارج میشوند تا عملکردشان را به آنها نشان دهند فمن یعمل از هر کس به قدر ذره نیکی کرده باشد آن را میبیند و, من و هر کس به قدر زرهی بدی کرده باشد آن را میبیند راست گفت خداوند بلند مرتبه و عزیب کاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه وسلم